حکمت نظر کردن در چاروق و پوستین. بازگردان قصه عشق عیاز. کن یکی جنجیست مالا مال راز. می هر روز در گجری برین تا ببیند چاروقی با پوستین. زن سخت مستی آورد. عقل از سر شرم از دل می برد. صد هزاران قرن پیشین را همین مستی هستی بزد ره زین کمین شد از دی از این مستی بریز که چرا آدم شود بر من رئیس خاجم من نیز و خاج زادم صد هنر را قابل و آماده ام در هنر من از کسی کم نیستم تا به خدمت پیش دشمن بیستم من ز آتش زادم او از وحل پیش آتش من وحل را چه محل او کجا بودند در آن دوری که من صدر عالم بودم و فخر زمان